وقتی به گذشت نگاه میکنم باغ برایم مانند یک رؤیا است زیبا بود به طرز شگفتانگیزی زیبا بود و فریبنده و حالا از دست رفته بود و دیگر نمی توانستم آن را ببینم باغ از دست رفته بود ولی من او را پیدا کرده بودم به همین خاطر خوشحال هستم در حد توانش دوستم دارد من هم با تمام وجود و تمام احساساتی که در ذاتم است دوستش دارم. فکر می کنم این همه دوست داشتن به خاطر جوانی و جنسیت هم است. اگر از خود بپرسم چرا دوستش دارم، پاسخی پیدا نمی کنم و اهمیتی هم نمی دهم. به همین دلیل گمان می کنم این نوع دوست داشتن محصول عقل، منطق و محاسبات نیست، بلکه چیزی است شبیه علاقه انسان به حیوانات و موجودات. فکر کنم همینطور باشد. مثلا پرنده های خاصی را به خاطر آوازشان دوست دارم، ولی آدم را به خاطر صدایش نیست که دوست دارم. چون هرچه بیشتر می خاند کمتر می توانم تحملش کنم. ولی از او می خواهم بخاند. چون می خواهم یاد بگیرم که هران چه او دوست دارد من هم دوست داشته باشم. مطمئنم که میتوانم یاد بگیرم زیرا در ابتدا نمی توانستم تحملش کنم ولی الان میتوانم صدایش آنقدر بد است که شیر را ترش می کند ولی مهم نیست میتوانم به شیر ترش حعادت کنم به خاطر هوشش نیست که دوستش دارم چون باهوش نیست نمیتوان او را به خاطر هوشش سرزنش کرد چون او که خودش خودش را خلق نکرده است و خداوند او را اینطور آفریده است. همین هم خوب است. میدانم که هدف عاقلانه در این کار وجود داشته است. فکر میکنم کنم حوش و قریه با گذر زمان و ننایهانی پیشرفت میکند. علاوه بر این عجله در کار نیست، به همین صورت هم به اندازه کافی خوب و دوست داشتنی است. به خاطر بخشندگی و رفتارهای ملاحظه کارانه و نازک بودنش نیست که دوستش دارم چون از این نظر دارای کم و کاستی هایی است ولی به همین صورت هم به اندازه کافی خوب است و هر روز هم بهتر می شود به خاطر تلاش و هنرش نیست که دوستش دارم فکر می کنم این ویژگی در ذاتش است ولی نمیدانم چرا آن را از من مخفی می کند این تنها درد من است. جز این مورد در تمام موارد دیگر با من رو راست و صادق است. میدانم چیزی را از من مخفی نمی کند جز همین یک مورد را. از اینکه شاید رازی دارد و آن را از من مخفی می کند غمگین میشم. و گاهی از این فکر آشفته گشته و خواب به چشمانم نمیآید. ولی سعی می کنم آن را از سرم بیرون کنم. نباید با این فکر لحظات خوبم را از بین ببرم چون اگر به این افکار میدان بدهم خوشبختیم نابود نابود می‌شود به خاطر دانشش نیست که دوستش دارم هر آنچه می‌داند را خودش آموخته است و حقیقتا هم چیزهای زیادی می‌داند ولی دانشش زیاد نیست پس چرا دوستش دارم فکر می‌کنم فقط به این خاطر که مرد است میتوانم بگویم که ذاتا خوب است و به همین خاطر دوستش دارم. ولی بدون داشتن این خصوصیات هم میتوانستم دوستش داشته باشم. میدانم حتی اگر به من می میکرد و آزارم میداد همچنان به دوست داشتنش ادامه میدادم. فکر کنم این موضوع نیز به خاطر زن بودن من است. او قوی و خوشتهره است. به همین دلیل دوستش دارم. تحسینش کرده و به او افتخار میکنم ولی حتی بدون وجود این خصلت ها نیز می توانستم دوستش داشته باشم اگر صاف و ساده هم بود دوستش داشتم اگر خرد میشد و درهم هم می شکست یا بیمار میشد نیز دوستش داشتم و به خاطرش کار میکردم برایش زحمت میکشیدم و برایش دعا میکردم تا زمان مرگ در کنارش میماندم و از اون مراقبت میکردم. آری، فکر کنم فقط دوستش دارم. بدون هیچ دلیلی تنها دوستش دارم. چون یک مرد است و مال من است. هیچ دلیل دیگری ندارد. فکر می کنم این همان چیزی است که اول هم گفتم. این نوع دوست داشتن محصول عقل، منطق و محاسبات نیست. این نوع دوست داشتن خودش میآید. کسی نمی دانند از کجا نه نیازی به توضیح دارد و نه توان توضیحی برایش پیدا کرد این چیزی است که فکر می کنم ولی من حالا یک دختر هستم اولین دختر دنیا که این مسئله را تجربه کرده است شاید هم بعدها معلوم شود که به خاطر نادانی و بی تجربگی هم اشتباه میکردم